اسل 24 روم پدرم همیشه در جستجوی سناریویی برای پولت بود و نمی دارم چند تر به خاطرش راه یافت ولی جزئیات جالب توجهی درباره یکی از آنها به خاطر دارم طرح این سناریو بعد از خواندن مقالهای در مغز پدرم آماده شده بود و این مقاله را هم شخصی از یک روزنامه باریده بود و فرستاده بود و موضوع آن مربوط بود به وضع نمایش فیلم های چاپلین در آلمان. پیشوا چون این گمان برده بود که چاپلین بسیار بدون شبیه است. برحال فکری به مغز پدرم راه یافت و او دریافت که این مرد کوچک با آن سبیل‌هایش واقعا به هیتلر شباهت دارد. ولی تشابه به همین جا محدود نمیشد. پدرم دریافته بود که او و پیشوا در یک سال متولد شدند و در یک ماه و منتها چهار روز اختلاف سن میانشان وجود دارد. هر دو در دوران کودکی با فقر سخت دست به گریبان بودند و بدین ترتیب سردمشت آنها بسیار به هم شبیه بوده است. تا آنکه هر یک راه جدا در پیش گرفتند. یکی میدونها نفر را به کام بدبختی میاندازد و دیگری همه مردم جهان را میخنداند. صدرم نمی توانست بی احساس وحشت به هیتلر بیاندیشد. ولی این پرسوناش او را مسهور ساخته بود و می او یک دیوانه است و من یک نفر کمدیان هستم و شاید ممکن بود جای ما عوض شود و بعد بی اختیار می گفت خدا رو شکر که من مثل او نیستم. اونیستم برحال من نمایش فیلم هایش در آلمان به اضافه تشابهات جسمی و تاریخی به هیتلر ترخی را در خاطر او پرورش داد و سرانجام شروع به کشیدن نقشههایی نمود که به سناریویی منتهی میگشت. در همین اوان با کندراد برکوویچی ملاقات کرد. کنراد به خاطر داشتن خون کولی به خود می‌بالید و همین کافی بود تا پاپا او را بپسندد و کندراد هم آلبن به خانه ما میآمد. کنراد هم در شباهت پدرم به هیتلر سخن می گفت و به زودی هر دوی آنها بر سر ترخ این سناریو به کار پرداختند. پدرم لذت فراوان می برد که در باره این طرح با دوستان و آشنایانش به گفتگوهای تمام نشدنی مشغول شود. ولی متاسفانه قبل از آنکه طرح جدی در این سناریو تهیه شود، همه علاقه پدرم نسبت به کنراد از میان رفت. پدرم نسبت به خیلی ها چون این حالتی داشت. در آغاز کار این آشنایان را دا ستایش میکرد و گمان می برد که زندگیش بدون وجود آنها رنگی نخواهد داشت. ولی این خیلی گذران بود و به محض که دوستان مضبور از پدرم دور میشدند آنها را به کالی فراموش میکرد و یا اینکه بعد از مدتی از صاحبت با آنها احساس ناراحتی مینمود و ترکشان میکرد و این چیزی بود که به سر کندرات برکوویچی آمد. پاپا دیدار با او را قطع کرد. و در همین حال نقشههای خودش را راجب تره سناریوی زندگی هیتلر به کنارین نهاد. او چونین می که هیتلر شخصیتی جدی از آن است که بتواند موضوعی کمدی قرار گیرد. به ترتیب سال 1938 فرار رسید و پدرم هنوز، سناریویی برای پولت تهیه نکرده بود از طرف دیگر آقای سلزنیک همیشه آماده بود که پولت را در فیلمهایش شرکت دهد به هر حال فکر میکنم امضای یک قرارداد تبید مدت بین پولت و سلزنیک باعث جدایی پدرم از پولت شد ولی ریشه های عدم توافقشان امیختر بود این محلکه است که تمام هنرپیشگان هالیوود به دان و چار پدرم آزمایش هایش را داده بود ولی پولت بدین احتیاج داشت که شخصیت حقیقی خود را آشکار سازد پولت بدین رازی نبود که تنها همسر و مورد حمایت کنر مشهور باشد در ماه روابط آن دو چنان تیره شده بود که پدرم به آرامی منزل را ترک گفت تا برای گذراندن تعطیلات به پیل بیچ برود. پدرم در این مسافرت تایم تا داران دوست وفادارش را نیز همراه برده بود. پدرم وفاداری و آدابدانی تایم را شدیدن می ستود و هم او را به عنوان نماینده خود در مجمع هنرمندان انتخاب کرد. خوب به خاطر دارم که پاپا او را با مهربانی یان که احساسش نپذیر می نمید. او از حضور تایم لذت می برد. چه در مواقعی که ترهای خود را بیان می کرد و چه هنگامی که سرگرم تنیس می شد. شاید آور نباشد اگر بگویم که در هالیوود او را بهترین دوست پدرم می شناختند. به هر حال این مسافرت آخر هفته پنج ماه به طول انجامید. تایم و پاپا خانه ای را که بر اقیانوس مشرف بود کرایه کردند. این خانه متعلق به خانمی بود به نام استل مالینسگل که اصلا ساکن و اهل پیل بیچ بود که در شمال قرار دارد. پدرم دو مستخدم ژاپنیش جورج و کیرو هم به دانجا برد و بدین ترتیب تمام روابطش را رو با پولت و با همه هالیوود قطع کرد. ما او را از دست داده بودیم و خانه‌ای که بر فراز تپه قرار داشت، با محیط سهراس و جذابش از کف ما رفته بود و با این همه تسلایی که داشتیم، پولت گاه گاه ما را به گردش میبرد و مامان که شادی ذاتی را باز یافته بود، ما را هم در زندگی آزاد خیش شریک ساخته بود ما حتی کسی شبیه پدرم داشتیم ولی او چندان حقیقی نبود چون از این نقطه نظر بدون نگاه نمی کردیم صحبتم بر سر ارتور دی است. او در لس آنجلس دلال بود و مادرم سال بعد با وی ازدواج کرد ارتور دی همیشه برای ما دوست شفیق بود و مصاحبتش دل خوشمان میساخت و غالبا در هوا کردن عباد با ما همراهی مینمود و مرا را به گردش میبرد. در آن بار او خلایی را که غیبت پاپا به وجود آورده بود پر کرد. حالا به اقامتگاه پاپا در پیل بیچ می رویم. منزل او پتوغ هنرمندان بود. پیل بیچ در شمال کالیفرنیا واقع است و بر روی ساحل طلا قرار دارد. در سراسر کناره چهل کیلومتری آن، ویلاهای مجلل میلیونرهای سان فرانسیس گوستف بستند. سروتی این میلیونرها که نسل در نسل افزایش یافته، زمانی که مالیات خیلی کم بود، روی هم انباشته شده است. در آنجا، کاپیتالیسم با تمام مظاهرش حاک فرماست. ساکنین آنجا که در میان تجملات به دنیا آمدند و بزرگ شدند، هرگز، با مشلات مالی روبرو نشدند و معنی فقر را نمیدانند در میان چنین مردمی پدرم زندگی منزوی و دور ای داشت و تمام وقت خود را روی سناریو برای پالت گذارده بود و از پذیرفتن هر کسی امتنا ورزید. ولی پس از دو هفته تایم تا دوران دوست قدیمی پدرم یعنی پگی بروکاو را به آنجا برد پگی دختری وابسته به اشراف نیویورک بود که با یکی از افراد خاندان مشهور کواکا وستد کرده بود و مشغول آن بود که ماه اصلش را در مغرب بغذراند پدرم به توسط او تدریجن به میان اجتماعات پیل بیچ راه یافت و در های متعددی که در گوش و کنار تشکیل میشد شرکت جست و خیلی زود مقبول عموم شد همه او را دعوت می و از او میخواستند که در سان فرانسیسکو به دیدارشان برود در همین زمان، تایم و پدرم به جبران میهمانی‌هایی که رفته بودند شبنشینی بسیار مجللی برپا ساختند. و برای این کار، آلاچیق مجلل پیل بیچ را اجاره کردند. هیچ چیز کم و کست نبود. ارکیس بود و نمایش فیلم و شامپانی که همچون موجی بر سر و روی همه فرو میریخت. این شبنشینی به صورت واقعی بزرگ فصل نرومد. تمام ساکنین پیل بیچ در این میهمانی شرکت داشتند. امروز هم بعد از بیست سال هنوز کسانی که در آن شرکت داشتند خاطر زنده از آن حفظ کردند. شامپانی و خاویار این دو مظهر همه آن چیزهایی هستند که پدرم دوست می و آنچه او دوست می تجمل است و بیکاری و امکان برآوردن متفاوت ترین سریخها. ولی اختلاف میان او و دیگر میلیونرهایی که در آنجا گرد آمده بودند این بود که پدرم زندگی را از میان پایینترین طبقات اجتماع شروع کرده بود. پدرم همیشه با ثروتمندان چه در کالیفرنیا و چه در نیویورک معاشرت داشت و از این گذشته خود او هم میلیونها ثروت دارد و از این جهت به خود میبارد. تجسم میلیونرهایی هایی که ابتدا فقیر بودند همیشه برای پدرم وسیله ای است برای تفریح و داستانی در این باب نحوه تفکر خاص او را در این مورد به خوبی آشکار میسازد. هاریسون دومیلیانز و همسرش پدرم و تایم را برای گذراندن تعطیلات آخرفته به لانک آیلند دعوت کرده بودند. در این دیدار آنها از بحران اقتصادی 1929 صحبت می کردن و تایم که در آن روزگار در بورس کار میکرد، خود از شهود عینی این بحران بود. در میان صحبت خانوم هاریسون گفت شوهرش چگونه از این فاجعه با خبر شده است. آقای هاریسون با غیافی در هم به خانه می و به همسرش که نگران شده بود می گوید واقعی وحشتناکی برای من رخ داده است. و بعد می بازار دچار رکود شده و ما سی میلیون دلار از دست دادیم. برایمان فقط هفتاد میلیون دلار مانده است. پدرم هرگز نمی توانست این فقط را از خاطر ببرد. برایمان فقط هفتاد میلیون دلار باقی مانده است. گوی این نقدار بسیار اندک است. مخصوصاً که آقای هاریسون این جنده را همچون مردی پاک باخته بر زبان رانده بود. پدرم هم در این بحران مقداری از ثروت خود را از دست داد. ولی ورشکست نشد چون این زیرکی را داشت که مقداری از سرمایه خود را به خارج از آمریکا منتقل ساخته بود. و به علاوه در بورس هم و از متزلزل نبود. ولی معامله نابجایی که در مکزیک کرده بود خسارت زیادی به دو وارد ساخت. و بعد از این واقعه از این نو معاملات دست کشید و سرمایهش را به دست شرکت های معتبرتری سپورت. عجیب بود، که یک هنرمند شمه اقتصادی ای چون او داشته باشد ولی او قبل از هر چیز یک هنرمند بود در اجتماع پیل بیچ او آدم هایی می که زندگی خاصی داشتند اینها قم پول نداشتند ولی مسائل احساسی برایشان چون همه مردم دیگر مشکل و سخت بود و پدرم که به درام و نمایش علاقه وافری داشت از این وقت لذت می برد. این حالات میلیونرها را به دقت بررسی می کرد و جزئیات آنها را یادداشت میکرد و بعدها استفاده فراوان از آنها برد. پدرم تنها به زندگی اشراف پیل بیچ دل نبسته بود، بلکه نسبت به زندگی یک قبیله کولی که در نزدیکی این پلاج مجلل اردو زده بودن نیز علاقه فراوان احساس می کرد. و در آنجا هم از نزدیک زندگی مردم را مطالعه می کرد. تا به حال رسم بر این بوده است که می ثروت انسان را خسته می سازد. یعنی معاشرت با ثروتمندان چنگی به دل نمی زند. و حالا و به خصوص در مورد پدرم میتوان گفت که تمایلات هنری انسان را جالب توجه می کند. پدرم در اردوگاه کولی ها هم مثل هر جای دیگر های جالبی کشف کرد. او می که بسیاری از این افراد ارزش چندانی ندارند. حرف زدن می دانند ولی قادر نیستند ایده یا فکری تحقق بخشند و پدرم عدم توانایی در خلاقیت را هرگز نمیتوانست تحمل نماید. او برده هنر خویش است و آرزو دارد که همه مردم همچون او باشند. و این محبت را در روبینسون جفرز یافت. جفرز شاعر بزرگ کالیفرنیا است که در یک خانگ بزرگ سنگی در پابان سود زندگی می کند. پدرم به وسیله یکی از دوستان مشترک با او آشنا شد. این دوست پدرم و جفرز را به نهار دعوت کرده بود و بعدها معاشرت میان هنرپیشه و شاعر هر روز افزونتر و بیشتر شد. پدرم طبع روان جفرز و شهامت و پاکی افکار او را می ستود. ولی با این همه فکر می‌کنم جفرز مسائل را بیش از حد مورد تمایل پدرم جدی می و تمایلات عجیبی نسبت به مسائل مختلف داشت. علاوه بر این، پدرم بازی زن ناشناسی را در تاعتر کارمل بسیار می و این زن دراتی کامینگور بود. او چند سال بعد در سینما نیز شهرتی عظیم کسب کرد و این را مدیون ایفای نقش مشهور سیتیزن کین از اورسن ولز بود. و جانباری هم همین تأثیر را بر پدرم گذاشت. او هم مخورمایی بود و هنر فراوان داشت. سرانجام در میان ساکنین پیل بیچ، میان پدرم و وارث یک صاحب کارخانه های قند روابط شاعرانهای به وجود آمد. و این زن جرالدین اسپریکل نام داشت. در آن زمان گمان می رفت که پدرم و پولت ازدواج کردند. ولی هیچ یک از آن دو این خبر را تایید کردند و جالب و حیرت انگیز اینجاست که خبر وصلت آنها هنگامی منتشر شد که از هم جدا شده بودند. بدین ترتیب چون وضع پدرم روشن نبود روزنامه نگاران مثل یک اده کارگاه در مورد او و میس اسپریکل به تحقیق پرداختند. میس اسپریکل در جواب آنها گفت ما هرگز در مورد ازدواج صحبتی نکردیم. ما فقط گاهی با یکدیگر چای خوردیم یا آقای سواری کردیم. من آقای چاپلین را خیلی دوست می دارم و گمان می کنم همسر او شدن چیز چالبی باشد ولی... <تصفيق> پدرم در حین اقامت در شمال خود را به پیل بیچ محدود نکرده بود. یک بار برای دیدار جان اشتاین به خانه در لوسکاتوس رفت. پدرم می دانست که اشتاین دیوانه دیوانوار کار می کند و از طرف دیگر آثار او را بسیار میپسندید. و غالباً به محلهایی که ماجراهای داستانهای اشتنگ بهتر آنها رخ داده بود می‌رفت تا بتواند وضعیت قهرمانان داستانها را از نزدیک دریابد. پدرم تمام وقتش را صرف دید و بازدید و کنجکاوی در زندگی دیگران و تفریه کردن نمی‌ساخت. کار قسمت بیشتر وقت روزانش را می گرفت. او ساعتهای فراوان همراه تایم، به بررسی نقشه‌هایش هایش می و زمانی نیز سرگرم نوشتن می‌شد. او هنوز نسبت به پولت خشمگین بود و هنگامی که پولت با لحنی استقاس آمیز به او تلفن می‌کرد، از جواب دادن سرباز باز می و می گفت بخزار به جهنم برود. در همین اوان برکوبیچی بر علیه پدرم به دادگستری شکایت برد. این جریان مربوط به سال 1947 است یعنی هفت سال بعد از نمایش فیلم دیکتاتور و قضیه چندان هم ساده نبود. پدرم چند پیشنهاد مبهم به برکوویچی داد تا جلوی سر و صدا را بگیرد. از این پیشنهادها در هالیوود زیاد میشود و کسی چندان خود را مقید آنها نمیسازد. از این گذشته زندگی هیتلر ملک شخصی کسی نیست و پدرم میتوانست با استناد به دفترچه یادداشت‌هایش ثابت کند که قبل از آشنایی با برکوویچی طرحی در مورد تهیه فیلم دیکتاتور داشته است. تام دوران که شاهد پدرم بود این ماجرا را برایم نخر کرده است. موقعی که پدرم به تهیه فیلم زندگی هیتلر علاقه من شده بود، برکوویچی و میلیونز دوگلاس برای گذراندن تعطیلات آخر رفته نزد او آمدند و بار دیگر درباره دیکتاتور به صحبت پرداختند همین گفتگو و صحبت هایی که قبلا در بورلی هیلز بر سر فیلم دیکتاتور شده بود باعث گردید که برکوویچی پدرم را به سرقت ایده‌های خودش متهم سازد و ناپلئون هم دیکتاتوری بود که پدرم علاقمند بود به روی صحنه آورد زمانی میخواست شخصا نقش او را بر آهده گیرند و بعد آن را به جیمز کاگنی پیشنهاد کرد ولی کاگنی تمایلی به این کار نشان نداد بعد از آنکه که به روی صحنه آمد پدرم افکار خود را در مورد ناپل اون دنبال کرد میخواست در فیلم زندگی ناپل اون نقش زند را به گرتا گاربو بدهد قرار بود جان رنوار مترانسن فیلم باشد فکرش را بکنید فیلمی که گرتا کاربو و پدرم در آن بازی کنند چه چیزی از آب در آید. ولی با وجود بحث و مبادلات فراوان این نقشه عملی نشد پدرم دیگر توانست، فیلمی درباره زندگی ناپل آن بسازد پدرم از سناریوی فیلمی که میخواست تهیه کند بسیار راضی بود ولی در عین حال توانست، از تفکر درباره سناریوی جدیدی روی زندگی هیتلر هم چشم بپوشد چون خود شباهت زیادی به پیش داشت و به همین جهت در باره اینتر خود با تایم سرگرم مباحثه شد و این درست شبیه سحنهی بود که بین او و برکوبیچی گذشته بود و بعد در طی یکی از صحبتها بدون مقدمه و بدون هیچ دلیل منطقی از میان کاغذهای قدیمیش طرح یک داستان خیالی را بیرون کشید. کرگز آن را به پایان نرسانید و این داستان توته های مرد است که جانشین ناپل آن می شود. پدرم مشغول تهیه نقشی برای جوان در یکی از فیلم‌هایش بود این داستان مربوط به میلیونر جوانی بود که در چین مسافرت می کرد و در آنجا دیوانوار عاشق یک زن روسی سفید شد این زن مستخدمه یک کاباره بود طرح فیلم چنان بود که پدرم می‌خواست از آن یک کمدی اجتماعی بسازد و قصدش آن بود که گاری کوپر نقش مرد فیلم را بر عهده بگیرد پدرم هنر کوپر را بسیار می ستود. زیرا معتقد بود که گاری کوپر در قالب نقش‌های خود می‌درود و جنبه تصنعی در او وجود ندارد بر سر اختلاف با برکوویچی به عقیده تایم اگر پدرم دنبال ماجرا را می‌گرفت برکوویچی در محاکمه مغلوب می شد. ولی پدرم از محاکمه بازی خسته بود چون محاکمهی که بر سر ماجرای میسباری در آن شرکت جسته بود بیش از حد بر اصابش گران آمده بود به همین جهت تصمیم گرفت 95 هزار دلار به برکوویچی بدهد و سر و صدای او را بخابارد برکویچی می بایست با گرفتن این مبلغ از تمام ادعاها و حقوق خود در مورد سناریوی فیلم دیکتاتور چشم بپوشد در اواخر جوان پولیت برای داره پدرم به پیل بیچ آمد او ما را هم همراه خود آورده بود تا راه آشتی را هموارتر سازد پدرم یک سناریوی کامل داشت که به دو پیشنهاد دیفای نخشان را کرد ولی در همین حال باز هم افکارش متوجه هیتلر بود یک هیلگر، یک یهودی کوچولوی ریشدار، یک دختر جوان یهود و اینها چیزهایی بودند که کم کم در مغز او جان میگرفتند تا موضوع اصلی فیلمی را تشکیل دهند ورود ما پدرم را از ادامه تفکر در تمام نخشه هایش باز داشت او دیگر نه در فکر هیتلر بود و نه در فکر گاریکوپر و فقط میکشفی تا وسایل سرگرمی ما را فراهم سازد و چیزی نگذاشت که همان صمیمیت سابق میان او و پولت به وجود آمد همه پولت را هم سر او میدانستند. روزنامهنگاران که همیشه بهانه بحانه میگردند متوجه شده بودند که پولت یک بار دیگر در کلوپ گلف نام خودش را خانم چاپلین نوشته بود این خبر مهمی بود چون خیلی کم اتفاق می‌افتاد که پولت از این عنوان حقیقی خود استفاده کند. برای من وستید این تعطیلات پیل بیچ بسیار دلانگیز بود. ما قایق سواری سیری کردیم و در میان دشت و دمن گردش نمودیم پدرم دو مرتبه با ما اسب سواری کرد. او به این ورزش علاقه چندانی نداشت، ولی جالبترین خاطره ما مربوط به خانه ارواست. این خانه متروکی بود که از منزل ما چندان دور نبود. پدرم و تای مدتی دراز وقت صرف کردند تا توانستند آن نقش وحشتناک را در مقابل ما ایفا نمایند. شب که می‌خواستیم به هالیوود بازگردیم، موقعی که تاریکی فرود آمد، پدرم در مورد این خانه با ما صحبت کرد و راز آن را برای برایمان بازگونه نمود. ما همه ی آنچه را که او گفت باور کردیم و این به خاطر سادگی بچگانه ما نبود بلکه نتیجه هنرمندی پدرم در نقالی بود. هیچکس حتی تایم هم نمی در برابر توضیحات او که آنقدر حقیقی و زنده بود مقاومت فرزد. بیست سال بعد تایم هنوز سحنی را که پدرم می در پیل بیچ برپا سازد به خاطر داشت. پدرم یقین داشت که یکی از ساکنین پیل بیچ که همسرش بیماری روحی داشت سرانجام روزی به دست این زنده قتل می دسید. و هر بار که او بدهایی می خواستند به منظر این شخص بروند، پدرم می گفت خواهی دید که بالاخره یک روز ما سر باریده این مرد را خواهیم دید که روی زمین افتاده است. دیر یا زود این ماجره اتفاق می افتاد. و اما اشباهی که او آنچنان برای ما وصل کرده بود. ما چنان مجذوب های پدرم شده بودیم که متوجه خروج تایم نشدیم. او چندین متر زنجیر همراه داشت و به خانه ارواح رفت و در طبقه بالای آن منتصر ماند. پدرم بعد از اینکه مطمئن شد تایم آماده شده است گفت: اگر حرفهایم را باور ندارید، میتوانید به آن خانه بروید. ما هم با او به خانه ارواح رفتیم. او ما را به اتاق نشیمن برد. و در نیمه تاریکی آنجا داستانهای وحشتناکش را باز هم بیان کرد. ناگهان صدای وحشتناکی از طبقه بالا برخواست. این صدا شبیه نفری باد در میان شاخه درختها بود. پدرم گفت، گوش کنید. من وستیدنی می لرزیدیم. پدرم باز هم شروع به حرف زدن کرد. باز صدای وحشتناک تکرار شد. و ناله دردناکی نیز به دنبال آن به گوش رسید و گری نطب و نطبه اوزاری به دنبال آن بود. و موقعی که صدای تکتیک برخورد زنجیر به زمین بلند شد من و از ترس می نرسیدیم. همین کافی بود و پا به فرار گذاشتیم. پدرم که وانمود میکرد، کرده اندازه ما وحشت زده است به دنبال من آمد. آن شب من قبل از خوابیدن مدت درازی درباره باره خانی ارواح صحبت کردیم و حبادث آن شب در خواب دیدیم و پدرم و تایم از وحشت ما لذت می بردند و هنگام صرف صبحانه صحبت تنها بر سر این موضوع بود. از خوشانسی بزرگان روز صبح قرار ملاقاتی داشتند و هیچکس کس همراه ما نیامد. ایستگاه ترنی که میباید سوار آن میشدیم خیلی نصیح بود. آنها به ما سفر به خیر گفتند و به حال خود رهایمان ساختند. ما وقت اضافی داشتیم و به یاد خانه ارواح و عجنه آن افتادیم. سید پیشنهاد کرد. به آنجا برویم و در روز روشن آن را رو ببینیم. مدتی در اطراف این خانه پرسه زدیم. خانه خالی بود و شیشه پنجره هایش در زیر نور خورشید پرتوهای وحشتناکی من اکس می ساخت. سید ناگه آن فریاد زد. به سراغ ارواح برویم. من نظرش را پسندیدم و گفتم. برویم و خودمان را از شرشان آسوده کنیم. به زودی به لباس سیاهان در آمدیم. مقداری سنگ برداشتیم و آنها را به سمت شیشه ها پرتاب کردیم. این کار سرگرمی خوبی بود و آن را با دقت انجام می دادیم و بعد از آنکه شیشه ها را با دقت شکستیم به طرف ترند دویدیم فقط موقعی که قطار به سمت هالیوود وود می رفت، خود را از چنگ تفکراتی که پدرم در ما به وجود آورده بود خلاس ساختی مبادقت و تعمق به تفکر درباره خانه ارواح پرداختیم. محققا در این خانه ارواح زندگی نمی کردند. ولی در اینکه آن را خالی کردن هم صحبت بسیار بود. پنجره ها با آن شیشه های بزرگ بسیار گران قیمت بودند. سید پرسید راستی ارباح در این خانه هستند؟ جواب دادم نمیدانم شاید ما نمی باید شیشه را بشکنیم چارلز: من هم مثل تو فکر می کنم آن وقت با وحشت منظر این خانه مجلد را با شیشه های شکستش به خاطر آوردیم من در حالی که موقعیت را خلاصه می کردم گفتم پاپا پا به راستی دیوانه خواهد شد سید گفت نباید با اون روبرو شویم. باید این کار را نکنیم. این احتیاط جالبی بود، ولی نپذیرفتم که به پدرم دروغ بگوییم و خود را به او نشان ندهیم. ما را برای همه بهار به منزلی که روی تپه و دور از پدرم بود تبعید کردند و حالا بعد از این روزهای عجیب پیل بیچ ما باید باز هم از او دور باشیم. این مسئله برای من لاین حل مانده است.